هر چه دانی که هر آینه معلوم تو گردد، به پرسیدن آن تعجیل مکن که حیبت سلطنت را زیان دارد. چو لغمان دید که در دست داوود همی آهن به معجزمون گردد، نپرسیدش چه میسازی که دانه که بی پرسیدنش معلوم گردد